آن مهر گستر مهربان مالک یوم الدین خداوندگار روز جزا و نستعین تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم. اهدنا الصراط المستقيم راهبری کن ما را به راه راست صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين راه کسانی که نعمت داده ای برانان که نخشم شده بر برانها و نه گمراهند بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله مهر گستر مهربان الف لام میم لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین این کتاب نیست هیچ تردیدی در آن هدایتی است برای پرهیزگاران <تصفيق> الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون يقيمون الصلاة و رزقناهم ينفقون کسانی که ایمان میآورند به غیب و برپا می‌دارند نماز را و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می‌کنند. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون و آنان که ایمان میآورند به آنچه فرو فرستاده شده به تو و آنچه نازل شده است پیش از تو و به روز واپسین آنان یقین دارند اولائی که علا هدن و اولائی آنان بر هدایتی استوارند از سوی پروردگارشان و آنان خودشان رستگارند این سواء اانذرتهم ام لم تنذرهم لا همانا این کسانی که کفر ورزیدند یکسان است بر آنان چه هشدارشان بدهی یا هشدارشان ندهی ایمان نمیآورند ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوت و عذاب عظیم مهر نهاده است الله بر دلهایشان و بر شنواییشان و بر دیدگانشان پرده است و برای آنان است بزرگ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم مؤمنین و از مردم کسانی هند که میگویند ایمان آوردیم به الله و به روز واپسین در حالی که نیستند آنان مؤمن یون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. به گمان خود فریب میدهند الله و کسانی را که ایمان آورده‌اند در حالی که نمی فریبند جز خودشان را و در نمییابند فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب الیم بما كانوا يكذبون در دل هایشان بیماری است پس افسودشان الله بیماری دیگر و برای آنان عذابی دردناک است به سبب آنچه دروغ می گفتند و ایذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالو انما نحن مصلحون و هنگامی که گفته شود به آنان فساد مکنید در زمین گویند جز این نیست که ما اصلاح گریم الا انهم هم المفسدون لا ینشعون آگاه باشید که آنان خودشان مفسدند ولی در نمیابند.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 و هنگامی که گفته شود به آنان، ایمان بیاورید، چنان که ایمان آوردند این مردم، گویند، آیا ایمان بیاوریم چنان که ایمان آوردند این نابخردان؟ آگاه باشید که آنان خودشان نابخردند، ولی نمیدانند. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوُ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَهِنگامی که دیدار کنند کسانی را که ایمان آورده اند گویند ایمان آورده ایم و چون خلوت کنند با شیطانهایشان گویند همانا ما با شماییم جز این نیست که ما ریشخند کننده ایم مؤمنان را الله یستهزیع بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون الله ریشخند میکند آنان را و وا میگوزارد آنها را در سرکشی در حالی که سرگشته اند اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین آنان کسانی هستند که خریدند گمراهی را به بهای هدایت و سودی نداد تجارت آنان و نبودند راه یافته مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا يبصیرون مثل آنان چون کسی است که افروخت آتشی را پس چون روشن کرد آتش پیرامون آن کس را، از بین برد الله روشنی آنها را و رها کرد آنها را در تاریکی هایی که چیزی را نمی بینند. صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ لا يَرْجِعُونَ آنان کرند لالند کورند و آنان باز نمیگردند از گمراهی او كصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ رَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنْ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَا <phasesimer> مانند گرفتاران در بارانی سخت باریده از آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است قرار میدهند انگشتانشان را در گوشهایشان از نهیب صاعقه ها از ترس مرگ و الله احاطه کننده کافران است یکادو البرق يخطف ابصارهم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 نزدیک است که برق برو باید چشمانشان را هرگاه که روشنی دهد برای آنان راه روند در آن روشنایی و چون تاریک کند بر آنان بیستند. و اگر می‌خواست الله قطعاً از بین میبرد شنواییشان و دیدگانشان را همانا الله بر هر چیزی تواناست یا ایوه الناس اعبدو ربکم الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُون ای مردم، بپرستید پروردگارتان را آن آفرید شما را و کسانی را که پیش از شما بودند باشد که شما پروا کنید الذي جَعَلَ لكم الأرض فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن كُلِّ قجبهی من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و تعلمون همان که قرار داد برای شما زمین را بستری و آسمان را سرپناهی و فرو فرستاد از آسمان آبی را سپس براورد با آن از محصولات روزی را برای شما پس قرار ندهید برای الله همتایانی را حالا که شما میدانید و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتو و دعو من دون الله این کنتم و اگر هستید در تردیدی از آنچه فرو فرستادیم بر بندهمان پس بیاورید سوره همانند آن را و فراخانید گواهانتان را به کمک در برابر الله اگر هستید شما راستگو و ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين پس اگر نکردید و هرگز نتوانید کرد پس پروا کنید از آن آتشی که هیزوم آن مردم و سنگ هاست که آماده شده است برای کافران و بشیرین لذین آمنوا و الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار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 و به متشابیه و لهم فیها ازواج مطهرت و هم فیها خالدون و مجدده به کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته که برای آنهاست هایی که روان است از دامن آنها رودها هرگاه روزیشان دهند از آن باغها از میوهای به عنوان روزی گویند این همان است که روزی داده شدیم از پیش و داده شوند آن روزی را که همگون روزی دنیاست و برای آنهاست در آنجا همسرانی پاکیزه و آنان در آن جاودانند این الله لا يستحيي <سجنس> ان <سجنس> يضرب <سجنس> مثلا ما بعوضه فما فوقها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 و ما يضل به إلا همانا الله شرم نمی کند. از اینکه بزند مثلی به پشهای و یا بالاتر از آن را. پس اما کسانی که ایمان آوردند، پس می دانند که همانا آن مثل حق است از سوی پروردگارشان. و اما کسانی که کفر ورزیدند پس میگویند چه چیزی اراده کرده است الله به این مثل گمراه میکند با آن بسیاری را و هدایت میکند با آن بسیاری را و گمراه نمی کند با آن جز نافرمانان را الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي يصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كساني كه ميشكنند پیمان الله را پس از استوار ساختنش و میگسلند آنچه را دستور داده است الله به آنکه پیوند یابد و فساد می کنند در زمین آنان خودشان زیانکارند كيف تكفرون بالله وكنتم كنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون چگونه کفر میورزید به الله؟ حالان که بودید مرده و زنده کرد شما را سپس؟ می میراند شما را باز زنده میگرداند شما را سپس به سوی او بازگردانده میشوید هو الذی خلقلکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء سبع سماوات و هو او کسی است که آفرید برای شما آنچه را در زمین است همگی آنگاه قصد کرد ساختن آسمان را و سامان داد آنها را به صورت هفت آسمان و او بحر شيء دونا. وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.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 فقال انبیعونی بی اسمائی ها اولائی کنتم صادقین و آنگاه که گفت پروردگار تو به فرشتگان همانا من قرار دهنده هم در زمین جانشینی را گفتند آیا قرار میدهی در آن کسی را که فساد میکند در آن و میریزد را؟ حالا که ما تسبیح می میکنیم با ستایشت و پاک میداریم خود را برای تو گفت همانا من میدانم چیزی را که شما نمیدانید و آموخت به آدم نامهای اشیاء همگی آنها را سپس عرضه داشت آنها را بر فرشتگان آنگاه گفت خبر دهید مرا از نامهای اینان اگر هستید راستگو لا علم لنا الا ما که گفتند پاک و منزهی تو نیست هیچ دانشی ما را جز آنچه آموختی به ما همانا تو خود آن دانای سنجیده کاری قال آدم أسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون گفت ای آدم خبرد آنها را با نامهایشان و چون خبر داد آنان را با نامهایشان خدا گفت آیا نگفتم به شما همانا من میدانم نهان آسمانها ها و زمین را و میدانم آنچه را آشکار می کنید و آنچه را پنهان می داشتید و ایذ قلنا للملائکت اسجدو لی آدم فسجدو ایلا ابلیس ابا و استکبر من الكافرين. و یاد کن، آنگاه که گفتیم به فرشتگان، سجده کنید برای آدم، پس همه سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و شد از کافران.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 ساکیم شو تو و همسرت در این بهشت و بخورید از نعمت‌های آن به فراوانی هر جا که خواهید و نزدیک نشوید به این تخت رخت میشوید از ستمکاران فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلناه بطو بعضكم لبعض عدو وقلناه بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر وَمَتَاعٌ إلى حين پس بلغزانید آن دو را شیطان از آنجا و بیرون کرد آن دو را از آنچه بودند در آن و گفتیم فرو دایید به زمین در حالی که برخیتان برای برخی دشمن خواهید بود و برای شماست در زمین قرارگاه و بهرهمندی تا مدتی فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه اینهو هو التواب الرحیم سپس دریافت کرد آدم از پروردگارش کلماتی را و خدا به میر بازگشت بر او بیگمان او خود آن بس توبه پذیر مهربان است قل نه بطو منها جمیعا فا اما مني منی فمن تبع هدا فلا خوف عليهم فمن تبیع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون گفتیم فرو از آن بهشت همگی و اگر که بیاید شما را از سوی من هدایتی و کسانی که پیروی کنند هدایت مرا پس نه ترسی است بر ایشان و نه آنان اندوهگین می شود وَالَّذِينَ كَفَرُوا وكذبوا بِ آیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هم فِيهَا خَالِدُونَ و کسانی که کفر ورزیدند و تکسیب کردند آیات ما را آنان همدمان آتشند آنها در آن جافدانند يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون اي بني إسرائيل بياد نعمت مرا که ارزانی داشتم بر شما و وفا کنید به پیمانم تا وفا کنم به پیمانتان و تنها از من بترسید وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كَافِرٍ به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و ايا و ایمان بیاورید به چه فرو فرستادم که تصدیق کننده است چیزی را که با شماست و نباشید نخوستین کافر به آن و مفروشید آیات مرا به بهای اندک و تنها از من پروا کنید ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون و در نیامیزید حق را به باطل و پنهان مکنید حق را حالانکه شما میدانید و اقیمو الصلاة و آتو الزکاة و ارکعو مع الراکعین و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را و رکو کنید با رکو کنندگان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون <تضحن> آیا فرمان میدهید مردم را به نیکوکاری و فراموش میکنید خودتان را حال آنكه شما میخوانید کتاب آسمانی را پس آیا خرد نمی ورزید و استعینو بی الصبر و و این الا علی الخاشعین و یاری بجویید به وسیله شکیبایی و نماز و همانا آن البته گران است مگر برخاش آن الَّذین انهم ربهم راجعون همان کسانی که گمان دارند به اینکه آنان ملاقات کننده اند پروردگارشان را و اینکه آنان به سوگه او بازگشت كنندهند یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی التی انعمت عليكم و وأنی فضلتكم علی العالمین ای بنی اسرائیل به یاد آورید نعمت مرا ارزانی داشتم بر شما و اینکه من برتری دادم شما را بر جهانیان وتقوم یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم و پروا كنيد از روزی که کفایت نکند هیچ کس از کسی چیزی را و پذیرفته نشود از او شفاعتی و گرفته نشود از او هیچ عوضی را و نه آنان یاری خواهند شد وإذ نجیناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ویستحیون نساءكم و فی ذالکم من ربکم عظیم و یاد کنید زمانی که نجات دادیم شما را از چنگ فرعونیان که تحمیل میکردند بر شما بدترین شکنجه را سر میبریدند پسران شما را و زنده نگه می داشتند زنان شما را و در این کار آزمایشی بود از پروردگارتان آزمایشی بزرگ و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون و آنگاه که شکافتیم با ورود شما دریا را آنگاه نجات دادیم شما را و غرق کردیم فرعونیان را در حالی که شما نگاه می کردید وعدنا ثم اتخذتم العجل من بعده و و آنگاه که وعده گذاشتیم برای موسا چهل شب را سپس گرفتید شما آن گوساله را به پرستش پس از رفتن او در حالی که شما ستمکار بودید سمعفونا عنکم من بعد ذالک لعلكم تشکرون سپس درگذشتیم از گناه شما پس از آن باشد که شما سپاس بگذارید و ایذ آتینا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و انگاه که دادیم به موسی آن کتاب و فرقان را باشد که شما هدایت یا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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عند بَارِئِكُمْ فَتَابَ عليكم اِنَّهُو هُوَ التواب الرَّحِيمُ وَانْگاه گفت موسى بقومش ای قوم من همانا شما ستم کردید به خودتان با به پرستش گرفتن شما آن گوگساله را پس بازگردید به سوی آفرینندهتان و بکشید نفستان را این بهتر است برای شما نزد آفرینندهتان پس بازگشت بر شما همانا او خود آن بس و به پذیر مهربان است و ایل قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتی نرالله الله فأخذتکم الصاعقت و انتم تنظرون وانگاه که گفتید ای موسی هرگز باور نمیکنیم کنیم را تا آنکه ببینیم الله را آشکارا پس گرفت شما را سائقه در حالی که شما نگاه می کردیدبحث نک بریمتی کو له تش سپس برانگیختیم شما را. پس از مردنتان باشد که شما سپاس بگذارید. وا وللنا علیकुम الغمام و انزلنا علیकुम المن و كلوا من طیبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون و سایبان ساختیم بر شما عبر را و فرو فرستادیم بر شما ترنجبین و بلدرچین را و گفتیم بخورید از پاکیزه های دلپذیر آنچه را روزی دادیم به شما و ستم نکردند به ما بلکه به خودشان ستم میکردند و ایذ قل ندخلو هذیه فکلو منها حیث شئتم رغدا و دخلو الباب سجده و دخولوا الباب سجدا و قولوا حطتن نغفر لكم خطایاکم و المحسنین و انگاه که گفتیم داخل شوید به این آبادی و بخورید از نعمتهای آن هر جا که خواهید به فراوانی و داخل شوید از دروازه سجده و بگویید درخواست ما آمرزشی است تا بی آمرزیم برای شما گناهانتان را و به زودی خواهیم افسود پاداش نیکوکاران را. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولی جایگزین کردند کسانی که ستم کردند سخنی را غیر از آنچه گفته شد به آنان پس فرو فرستادیم آنان که ستم کردند عذابی از آسمان به سبب آنچه نافرمانی می کردن و ایذ استسقا موسا لقومهی فقل نضرب بی الحجر فنفجرت من حسنتا عشرة عین قد علم كل اناس مشربه هم قولوا واشربوا من رزق الله ولا تعثو فی الارض مفسدین. و هنگامی که آب خواست موسی برای قومش پس گفتیم بزن با عصایت بر آن سنگ آنگاه جوشی دزان دوازده چشمه به راستی که دانست هر گروهی آبش خور خود را و گفتیم بخورید و بنوشید از روزی الله و به فساد نپردازید در زمین تبهكارانه وإذ قلتم یا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك یخرج لنا مما تنبت الأرض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 انهم كانوا یکفرون بی الله و یقتلون النبیین غیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا و یعتدون و انگاه که گفتید ای موسا هرگز تاب نمی آوریم بر یک خراکی و بخوان برای ما پروردگارت را که بیرون آورد برای ما از آنچه میرویاند زمین، از سبزیش و خیارش و گندمش و عدسش و پیازش موسا گفت آیا میخواهید جایگزین کنید؟ آنچه را آن پستر است به جای آنچه آن بهتر است فرو دایید به شهری که همانا برای شما هست، آنچه خواستید. و زده شد بر آنان مهر خاری و بینوایی و بازگشتند با خشمی از الله. این بدان سبب بود که آنان کفر می‌ورزیدند به آیات الله و می‌کشتند پیامبران را به ناحق آن به این سبب بود که سرکشی نمودند. و تجاوز می کردند. این‌الذین آمین و الذین هادوا و النصار و الصابئین من آمین بالله و اليوم الآخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم بل اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون همانان آنان که ایمان آوردند و آنان که یهودی شدند و مسیحیان و صابعی هرکس هر کس که ایمان آورد به الله و روز واپسین و کار شایسته کند پس برای آنان است پاداششان نزد پروردگارشان و نترسی است بر آنان و نه آنان اندوهگین میشوند و ایز اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم اططور ما آتیناکم بی و اذکرو ما فیه لعلكم تتقون و آنگاه که گرفتیم پیمانتان را و برافراشتیم بر فرازتان کوه تور را و گفتیم بگیرید آنچه را دادیم به شما با جد و جهد تمام و یاد کنید آنچه را در آن است باشد که شما پروا کنید سون متتون مییم بعدیزلی ك فله فل الله عیکم و راحمگو توم منخوااصیری سپس پشت کردید پس از آن پیمان و اگر نبود بخشش الله بر شما و مهربانی او قطعاً می‌شدید از زیانکاران ولا قد علیمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردتا خاسئين و به راستی آگاه شدید از کسانی که تجاوز کردند از میان شما در شنبه و گفتیم به آنان باشید بوزینگانی رانده شده فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظه للمتقین و قرار دادیم آن عقوبت را کیفری برای حاضران آن و نسلهای پس از آن و پندی برای پرهیزگاران و اذ قال موسی لقومه این الله یأمركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزواه قال اعوذ بالله ان اکون من و انگاه که گفت موسی به قومش همانا الله فرمانتان میدهد که سر ببرید گاوی را گفتند آیا میگیری ما را به مسخره؟ گفت پناه میبرم به الله از این که باشم از نادانان قَالُ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا قَالَ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَتُ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ گفتند بخوان برای ما پروردگارت را تا بیان کند برای ما که چگونه است آن گاف گفت همانا او میگوید همانا آن است نه پیر و نه جوان میان سال باشد میان آن پس عمل کنید آنچرا فرمان یافته اید قالوا لنا ربک یبین لنا ما لونها قال این صفراء گفتند بخوان برای ما پروردگارت را تا بیان کند برای ما چگونه است رنگ آن گفت همان او میگوید آن گاویست زرد زرد پر رنگ که رنگش شاد میکند بینندگان را قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما هی این البقر تشابه علینا و اینا انشاء الله لمهتدون گفتند بخوان برای ما پروردگارت را تا بیان کند برای ما چگونه است آن که این گاو مشتبه شده است بر ما و به راستی ما اگر بخواهد الله حتما هدایت شده ایم. قال يقول ان بقرت لا ذلول تثیر الارض وَلا لا تسقی الحرف مسلمت اللاشیت فیها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون گفت همانا همانا آن است نه رام که شخم زند زمین را و نه آبیاری کند کشتزار را. سالم است، نیست خال و لکی در آن، گفتند اکنون آوردی حق را، پس سر بریدند آن را و نزدیک بود که انجام ندهند. و ایز قتلتم نفسا فدارعتم فد فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون و آنگاه که کشید کسی را و با یک دیگر به نزا پرداختید در آن و الله بیرون آورنده است آنچرا پنهان می داشتید فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ پس گفتیم بزنید به آن مختول پاری از آن گاف را این چونین زنده می الله مردگان را و نشان میدهد به شما نشانه هایش را باشد که شما خرد ورزید ثم قصد قلوبکم من بعد ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوه و من الحجارت لما یتفجر منه الأنهار.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 سخت شد دلهایتان پس از آن پس آن دلهایتان مانند سنگ ها شد یا سختتر از آن و همانا برخی از سنگ ها چنانند که میجوشد از آن رودها و همانا از آنها چنانند که میشکافت و بیرون میآید از آن آب و همانا برخی از آنها قطعند چنانند که فرو می افتد از ترس الله و نیست الله غافل از آنچه میکنی کنیم افتطمعون ان یؤمنوا لكم وقد كان کان فریق منهم یسمعون كلام الله یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و یعلمون پس آیا امید دارید که تصدیق کنند یهودیان شما را حال که همانا گروهی از آنان میشنیدند کلام الله را سپس تحریف میکردند آن را پس از آنکه دریافته بودند آن را در حالی که آنان میدانستند. و اذا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم فَتَحَ و هنگامی که دیدار کنند با کسانی که ایمان آورده اند گویند ایمان آورده ای و چون خلوت کنند آنان با یکدیگر گویند آیا سخن میگویید با آنان درباره آنچه گشوده و آشکار ساخت الله برای شما تا چون و چرا کنند با شما با آن نزد پروردگارتان پس آیا خرد نمی ورزید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما یسرون و ما و آیا نمیدانند که الله می آنچه آنچرا پنهان می کنند و آنچرا آشکار می سازند و منهم امیون و و برخی از آنان درس ناخوانده هستند که نمیدانند کتاب آسمانی را جز خیالاتی خام و نیستند آنان جز اینکه گمان پردازی می کنند.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 ما پس وای بر کسانی که می نویسند کتاب را با دستانشان سپس میگویند این از نزد الله است تا بفروشند آن را به بهایی اندک پس وای بر آنان از آنچه نوشته است دست هایشان و وای بر آنان از آنچه به دست می آورند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل ااتخذتم عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون و یهودیان گفتند هرگز نمیرسد به ما آتش جز روزهایی شمرده شده بگو آیا گرفته اید از نزد الله پیمانی پس هرگز خلاف نخواهد کرد الله پیمان خود را؟ یا میگویید بر الله چیزی را که نمیدانید؟ بلا من كسب سیئتا و به خطیعته فالای که اصحاب النار هم فیها خالدون آری هر که کسب کند بدی را و فراگیرد او را گناهش پس آنان همدمان آتشند، آنان در آن جاودانند والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فيها خالدون و کسانی که ایمان آوردند و کردند کارهای شایسته آنان همدمان بهشتند آنان در آن جاودانند و اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة و الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون و یاد کنید آنگاه که گرفتیم پیمان بنی اسرائیل را که مپرسید جز الله را و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و بگویید به مردم سخن نیکو را و برپا دارید نماز را و بدهید زکات را. سپس پشت کردید جز اندکی از شما و شما روی گردانید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ وَإِنَّكَ غَرَفْتِمْ بَيْعَانَ تَانَ دَاكَ نریزيد خونهایتان را و بیرون مکنید خودتان را از خانهایتان سپس بدین پیمان اقرار کردید در حالی که شما بر آن گواهیید ثم انتم ها اولائ تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم يا رهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرات وَهُوَ وهو محرم عليكم إخراجهم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 وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ولی باز شما اینانید که میکشید خودهاتان را و بیرون میرانید گروهی از خودتان را از دیارشان در حالی که پشتیبانی می کنید یک یکدیگر را بر ضد آنان به گناه و تجاوز و اگر بیایند به نزد شما به صورت اسیرانی فدیه می دهید برای آزادی آنان حالانکه آن حرام شده است بر شما بیرون راندنشان پس آیا ایمان می‌آورید ببخشی از کتاب و کفر به ببخشی دیگر پس نیست سزای کسی که کند چنین از شما جسخاری در زندگی دنیوی و روز رستاخیز باز گردانده میشوند به سوی سختترین عذاب و نیست الله غافل از آنچه میکنی اولائک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون آنان کسانی اند که خریدند زندگی دنیوی را به بهای آخرت پس تخفیف نیابد از آنها عذاب و نه آنان یاری خواهند شد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 <سؤال> افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوى ان فسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تنقتلون وبدرسيي كداديم بموسى كتاب تورات را و در پی آوردیم پس از او فرستادگان را و دادیم به عیسی پسر مریم نشانه های روشن را و تأیید کردیم او را با روح القدس پس چرا هرگاه آورد برای تان فرستادهی چیزی را که سازگار میلتان نبود تکبر ورزیدید پس گروهی را تکسیب کردید و گروهی را کشتید و قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما یؤمنون و گفتند دلهای ما در پوشش هست نه بلکه لعنت کرده است آنان را الله به سبب کفرشان و اندکی ایمان می وَلَمَّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمَّا عَرَفُوا وَكَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ وَهِنگامی که آمد برای ایشان کتابی از نزد الله که تصدیق کننده است را با آنان است و با آنکه از پیش به وسیله آن خواستار پیروزی بودند بر کسانی که کفر ورزیدند پس چون آمد برای ایشان آنچه از پیش می شناختند کفر ورزیدند بداند پس لعنت الله بر کافران با بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بد است چه فروختند آن خودشان را اینکه که گفت ورزیدند با آنچه فرو فرستاده است الله از روی حسدشان از اینکه فرو میفرستد، الله از فضل خیش وحی را بر هر که خواهد از بندگانش پس باز گشتند با خشمی افزون بر خشمی دیگر و برای کافران عذابی خار کننده است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 هو الحق مصدق لما معهم قل فلما تقتلون ام بي الله من قبل ان كنتم مؤمنين وهنگامی که گفته شود به آنان ایمان بیاورید آنچه فرو فرستاده است الله گویند ایمان میآوریم به آنچه فرو فرستاده شده است بر پیامبران ما و کفر میورزند به آنچه غیر از آن است در حالی که آن حق است و تصدیق کننده چیزی است که با آنان است بگو پس چرا میکشید پیامبران الله را پیش از این؟ اگر هستید مؤمن و لقد جاءکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده و ظالمون و به درستی که آورد برای شما موسی نشانه روشن روشند را آنگاه گرفتید آن گوثاله را به پرستش پس از رفتن او به کوه تور در حالی که شما ستمکار بودید و ایز اخذنا میثاقكم و رفعنا فوقکم ابطور خذو ما آتیناکم بی قوت قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين وياد كنيد انگاه که گرفتیم تن را و تیم بر فرازتان کوه تور را و گفتیم بگیرید آنچه را دادیم به شما با جد و جهد تمام و بشنوید گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم و نوشانیده شد در دلهایشان مهر گوساله به سبب کفرشان بگو بد است آنچه وامی دارد شما را به آن ایمانتان اگر هستید. مؤمن. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنه الموت فتمنه الموت إن كنتم صادقين بگو اگر هست برای شما سرای اخروی نزد الله به طور اختصاصی نه دیگر مردمان بس آرزو کنید مرگ را اگر هستید راستگو ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم و الله علیم بالظالمین. و هرگز آرزو نخواهند کرد آن را هیچگاه به سبب آنچه پیش فرستاده است دستهایشان و الله داناست به ستمکاران و هم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. و البته خواهی یافت آنان را حریسترین مردم بر برزندگانی و حتی تر از کسانی که شرک ورزیدند دوست دارد هر یکیشان که کاش عمر داده شود هزار سال حالانکه نیست آن عمر دراز دور کننده او از عذاب هر اندازه که عمر داده شود و الله بیناست به آنچه میکند قل من كان عدو الجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بگو هر کس باشد دشمن جبریل دشمن خداست بی گمان که فرود آورده است آن قرآن را بر دل تو به فرمان الله، در حالی که تصدیق کننده است آن چیزی را که پیش از آن است، و هدایت و بشارتی است برای مؤمنان. من کان عدو لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال الله عدو هر کس باشد دشمن الله و فرشتگان او و فرستادگانش و جبرئیل و میکائیل او کافر است و همانا الله دشمن کافران است و لقد انزلنا الیک آیات بینات وما يكفر بها الا الفاسقون و به درستی که فرو فرستادیم به سوی تو آیات روشن و كفر نمی ورزد کسی به آن جز نافرمانان و كلما عاهدوا عهدا نبذهم فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون و چرا هرگاه پیمانی بستند دور افکندند و شکستند آن را گروهی از آنان نه بلکه بیشترشان ایمان نمیآورند ولمما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فریق من الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ و هنگامی که آمد برای ایشان فرستاده ای از سوی الله که تصدیق کننده است چیزی را که با آنان است انداختند گروهی از کسانی که داده شدند کتاب را کتاب الله را پشت سرشان گویی که آنان نمی دانند که آن کتاب خداست و تبعوا ما تلو الشیاطین علی ملک سلیمان و ما كفر سلیمان ایمان ولكن الشیاطین كفروا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 وَلَقَدْ علموا لمن اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقُ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْ يَعْلَمُونَ و پیروی کردند یهودیان آنچرا میخواندند به جادوگری شیطان ها بر ضد فرمان رویی سلیمان با اینکه کفر نورزید سلیمان ولی شیطان ها کفر ورزیدند که آموزش میدادند به مردم جادوگری را و نیز را نازل شده بود بر آن دو فرشته در بابل هاروت و ماروت سوء استفاده میکردند حال آنکه آموزش نمیدادند، آن دو هیچ کسی را، مگر آن که می گفتند جز این نیست که ما وسیله آزمایش هستیم، پس مبادا کافر شوی، ولی می آموختند از آن دو چیزی را که جدایی می با آن، میان مرد و همسرش، و نبودند آنها زیان رسان با آن جادو، هیچ کسی را جز به ازن الله و می آموختند چیزی را که زیان میرساند به آنان و سودشان نمیداد و به درستی که می دانستند قطعا هر کس خریدار آن باشد نیست برای او در آخرت هیچ بهری. و قطعا بد است چیزی که فروختند به بهای آن خودشان را اگر می دانستند. ولو أنهم واتقوا من عند الله خير لو كانوا واگر همانا آنها ایمان آورده و پرهیزگاری کرده بودند قطعا پاداشی از نزد الله برایشان بهتر بود اگر میدانستند يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب اليم اي كسانك ايمان اورد عيد نغوئيد ببيامبر راعنا و بگوئيد انظرنا و بشنوید و برای کافران عذابی دردناک است ما یود الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الكتاب الْكِتَابِ وَلَلْمُشْرِكِينَ اَنْ ينزل عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ من رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يختص بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذو الفضل العظیم دوست نمیدارند دارند کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و نه مشتکان که فرو فرستاده شود بر شما خیری از سوی پروردگارتان حال که الله اختصاص میدهد به رحمت خود کسی را که بخواهد و الله دارای بخشش بزرگ است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 یا از یاد ببریم آن را می آوریم بهتر از آن یا مانند آن را آیا ندانستی ای که بیگمان الله بر هر چیزی تواناست؟ الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي آیا ندانسته ای بی گمان الله از آن اوست فرمان روای آسمان ها و زمین و نیست برای شما در برابر الله هیچ دوستی و نه هیچ یاوری أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يا إنكه ميخواهيد كه درخواست كنيد از پیامبرتان. چنانکه که درخواست شد از موسا پیش از این و کسی که جایگزین کند کفر را به جای ایمان پس به راستی گم کرده است راه میانه را من اهل لو من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 متى <تصفيق> الا من كان هودا او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين و گفتند هرگز داخل نشود به بهشت جز کسی که باشد یهودی یا مسیحی این آرزوهای آنان است بگو بیاورید دلیلتان را اگر هستید راستگو بلا من اسلم وجهه للله وهو محسن فله أجره عند ربه عند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 فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون و گفتند یهودیان نیستند مسیحیان بر چیزی و گفتند مسیحیان نیستند یهودیان بر چیزی حال که آنان می‌خوانند کتاب را همچنین گفتند کسانی که دانشی ندارند مانند سخن آنان را پس الله داوری میکند میانشان روز رستاخیز در آنچه در آن اختلاف میکردند و من اظلم ممن منع مساجد الله ان و فی اولئی ما کان لهم اید يدخلوها ایلا خائفین لهم فی الدنیا خزي و لهم فی الاخرت عذاب عظیم و کیست ستمکار تر از کسی که باز دارد مسجد های الله اینکه یاد شود در آن نام او و بکوشد در ویرانی آنها آنان سزاوار نیست برایشان که در در آن مگر به حالت ترسان برای آنان در دنیا خاریست و برای آنها در آخرت عذابی بزرگ است وللهالمشرق والمغرب فأينما فا تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم و از آن الله است خاور و باختر پس به هر سو روی کنید پس همانجا روی الله است همانا الله گسترده وجود داناست وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون گفتند گرفته است الله فرزندی را منزه است او بلکه از آن اوست آن در آسمان ها و زمین است. همگی برای او فرمانبرند برند. بدیع السماوات والارض و الارض و قضا امرا فا انما یقول لهو کن فا یکون پدیداورنده آسمان ها و زمین است. و چون حکم گناهکاری را پس فقط گوید به او باش بیدرنگ میشود وقال الذین لا یعلمون لولا یكلمنا الله أو تأتینا آیه كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینن ال آیات یوقنون و گفتند کسانی که نمیدانند چرا سخن نگوید با ما الله یا نیاید به سوی ما نشانهای این چونین گفتند کسانی که پیش از آنها بودند همانند سخن آنان را همسان گشت دلهایشان به درستی که به روشنی بیان کردیم آیات را برای گروهی که یقین دارند اینا ارسلنا بالحق بشیرا و ولا تسأل عن اصحاب الجحیم همانا ما فرستادیم ترا به حق در حالی که مجد دهنده و بیمرسانی و اصطحورسید نمی شود درباره همدمان دوزخ. ولن ترضا عنك اليهود ولن نصار حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدا ولا اني تبعت اهواهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير و هرگز خشنود نمیشود از تو یهودیان و نه مسیحیان تا آنکه پیروی کنی از آیین آنها بگو بیگمان تنها هدایت الله هست که آن هدایت واقعی است. و اگر پیروی کنی از هوسهایشان پس از آن که آمد به سوی تو از دانش وحی نیست برای تو از سوی الله هیچ دوستی و نه هیچ یاوری. الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ان انك به ایشان کتاب آسمانی را میخوانند آن را چنان که سزاوار خواندنش است آنانند که ایمان میآورند به آن و کسی که کفر ورزد به آن پس آنان خودشان زیانکارند یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتی اللتی انعمت علیکم و فضلتكم علی العالمین ای بنی اسرائیل به یاد آورید نعمت مرا که ارزانی داشتم بر شما و این كه من برتری دادم شما را بر جهانیان واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة و روا كنيد از روزی که کفایت نکند هیچکس، از هیچ کس چیزی را و پذیرفته نشود از وی هیچ جایگزینی و سود ندهد او را شفاعتی و نه آنان یاری شوند.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 قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمین. و وانگاه که آزمود ابراهیم را پروردگارش با سخنانی و او به انجام رسانید آنها را خدا گفت همانا من قرار دهنده ام تو را برای مردم پیشوایی ابراهیم گفت و از فرزندان من نیست گفت نمیرسد پیمان پیشوایی من به ستمکاران و اذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنوا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل انطهیرا بیتی لطائفین والعاکفین والركع السجود و انگاه که قرار دادیم خانه را پایگاهی برای مردم و جایگاه امنی و گفتیم برگزینید از مقام ابراهیم نمازگاهی را و سفارش کردیم به ابراهیم و اسماعیل که پاکیزه بگردانید خانه امر را برای تواف کنندگان و معتکفان و رکو کنندگان سجده گذار.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 ام الى و بئس و آنگاه که گفت ابراهیم پروردگارا قرار ده اینجا را سرزمینی امن و روزیده ساکنانش را از محصولات هرکس که ایمان آورد از آنها به الله و روز واپسین خدا گفت و کسی که کفر ورزد بهرمد میگردانمش اندکی سپس ناچار میگردانم او را به سوی عذاب آتش و بد سرانجامی است و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل ربنا تقبل منا انک انت السميع العلیم و آنگاه که بالا می برد ابراهیم پایه ها را از خانه کعبه و نیز اسماییل می گفتند پروردگارا بپذیر از ما، همانا تو خود آن شنوای دانایی.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 و برگرد بر ما از سر مهر امانا تو خود آن بس تو به پذیر مهربانی ربنا و فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الكتاب والحكمة و يزكیهم. اینکه انت العزیز الحکیم پروردگارا و برانگیز در میان آنان پیامبری را از خودشان که بخواند بر آنان آیه را و بیاموزد به آنان کتاب قرآن و سنجید کاری را و پاکشان سازد همانا خود آن پیروز منده سنجیده کاری و من یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فی الدنيا، و في فی لمن الصالحين. و چه کسی روی برمیتابد؟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 پس نمیرید البته جز در حالی که شما فرمانبر او باشید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لی ما تعبدون من بعدی قالو نعبدو الهک قالوا نعبدوا إلهاك وإلها آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون آيا بودیت شما حاضر انگامی که فرا رسید یعقوب را مرگ آنگاه که گفت به پسرانش چه می پرستید پس از من؟ گفتند می پرستیم خدای تو را و خدای پدرانت ابراهیم و اسمایل و اسحاق را که خدایی یگانه است و ما برای او فرمان بریم.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 و پرسیده نمی شوید از آن چه آنان می کردند و قالو کونو هودا او نصارا تهتدوا قل بل ملت ابراهیم حنیفا و كان من المشرکین و گفتند بشوید یهودی یا مسیحی تا هدایت یابید بگو نه بلکه پیروی می آیین ابراهیم را که حق بود و نبود از مشتکان قولو آمنا بالله و ما انزل اینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و ما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى و ما اوتی موسی و عیسی و من ربهم لا نفرق بین احد, احد منهم و له مسلمون ایمان آوردیم به الله و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی ما و آنچه فرو فرستاده شده است به سوی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسبات و آنچه داده شده است به موسی و عیسی و آنچه داده شده است به پیامبران دیگر از سوی پروردگارشان فرق نمی گذاریم هیچ هیچیک از آنان و ما تنها برای او فرمان بریم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وإن تولوا فا فإنما هم في سقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم پس اگر ایمان آوردند به مانند آن چه شما ایمان آوردید به آن پس به راستی هدایت یافتند و اگر روی برتافتند پس جز این نیست که آنان در ستیزند پس به زودی کفایت میکند تو را از گزند آنان الله و او آن شنوای داناست صبغت الله و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون رنگ الله را و کیست نیکوتر از الله در رنگ و ما فقط او را پرستنده ایم قلعت حجوننا فی الله و هو ربنا و ربكم ولنا اعمالنا و لكم اعمالكم ونحن و نحن له مخلصون بگو آیا چون و چرا میکنید با ما درباره الله؟ حالان که او پروردگار ما و پروردگار شماست و برای ماست کردارهای و برای شماست هایتان، و ما تنها برای او اخلاص ورزیم ام تقولون این ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هودا او نصارا قل ان انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهاده عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون يا <تصفيق> انك همانا ابراهیم و اسمایل و اسحاق و یعقوب و اسبات بودند یهودی یا مسیحی بگو آیا شما داناترید یا الله و کیست ستمکار تر از کسی که پنهان دارد شهادتی را که نزد اوست از سوی الله و نیست الله غافل از آنچه کنید تِلْكَ اُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا آنان گروهی اند که هم درگذشتند. برای آنان است آنچه به دست آوردند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و پرسیده نمی شوید از آنچه می کردن.